مصنوی معنوی مولوی برنامه 164 گفتن خاجه در خواب بان با پای مرد وجوه وام آن دوست را که آمده بود و نشان دادن جای دفن آن سیم و پیغام کردن به وارثان که البته آن را بسیار نبینند و هیچ باز نگیرند و اگر او هیچ از آن قبول نکند یا بعضی را قبول نکند همانجا بگذارند تا هران که خواهد برگیرد که من با خدا نظرها کردم که از آن سیم من و متعلقان من حبه باز نگردد. بشنا داد مهمان جدید من همه دیدم که او خواهد رسید. من بودم از وامش خبر بسته بهر او دو سه پاره گوهر که وفای وام او هستند و بیش تا که زیفم را نگردد سینه ریش وام دارد از زهب او نو هزار وام را از بعض اینگو گو برگزار فضله ماند زینبسه گو خرج کن در دعایی گو مرا هم درج کن خواستم تا آن به دست خود دهم ده در فلان دفتر نبشته است این قسم خود عجل مهلت ندادم تا که من خوفیا بسپارم بدو دو در عدن لالو یاقوت است بهر وام او در خنوری و نوشته نام او در فلان تاقیش مدفون کردم من غم آنیار پیشین خوردم قیمت آن را نداند جز ملوگ فج تهید انلا یخ دعوگ. در بیوع آن کن تو از خوف غرار که رسول آمخت سه روز اختیار از کساد آن مترسو در ما یفت. که رواج آن نخواهد هیچ خوفت. وارسانم را سلام من بگو، وین وسیعت را بگو هم مو بمو، تازه بسیاری آن زر بیگرانی پیش آن مهمان نهند، ور بگوید او نخواهم این فره گو بگیرو هر را خواهی بده زان دادم باز نستانم نقیر سوی پستان باز ناید هیچ شیر گشته باشد همچو سگ قیرا اکول مسترد نهله بر قول رسول ور ببندد در نباید آن زرش تا بریزند آن عطا را بر درش هر که آنجا بگذرد زر می برد نیست هدیه مخلصان را مسترد بحر او بنهادم آن از دو سال کردم من نظرها با جلال و روا دارند چیز زانستد بیست چندان خود زیانشان افتد گر روانم را بجولانند زود صدر مهند برشان برگشود از خدا امید دارم من لبق که رساند حق را در مستحق دو قضیه دیگر را شرح داد لب و ذکر آن نخواهم برگشاد تا بماند دو قضیه سر و راز هم نگردد مصنوی چندین دراز بر جهید از خواب انگشتک زنان گه غزلگویان و گه نوحک کنان گفت مهمان در چه سودا هستی پای مردا مست و خوش برخواستی تا چه دیدی خواب دوش ای بلعلا که نمی گنجی تو در شهر و فلا خواب دیدم پیل تو هندوستان که رمی دستیز حلق دوستان گفت سوداناک خواب دیدم در دل خود آفتاب دیدم خواب دیدم خاجه بیدار را آن سپرده جان دیدار را خواب دیدم خواجه موتیل منا واحدن کل الف ان این امرن انا مستو بی خود این چونین بر می شمارد تا که مستی اقل و حوشش را ببارد در میان خانه افتاد او دراز خلق انباه گرد او آمد فراز با خود آمد گفت ای بحر خوشی اینه ها در حوش ها در بیهوشی خواب در بنهادهی بیداری بستهی در بیدیلی دلداری منعیمی پنهان کنی در ظل فقر توق دولت بسته اندر غل فقر زد اندر زد پنهان مندرج آتش اندر آب سوزان مندرج ان در آتش نمرود درج دخلها رویان شده از بزل و خرج تا گفته مصطفی شاه نجاه از سماه و یا اولن نعم رباه مانقس مالون من قاط قط انما الخیرات و نعم المرتبت جوشش و افزونی زر در زکات اسمت از فحشا و منکر در آن انزکاتت کیست را پاسبان وانسلاتت همز گرگانت شبان میوه شیرین نهان در شاخ و برگ زندگی جاودان در زیر مرگ زبل گشت قوت خاک از شیوهی سن زاده زمین را میوه در آدم پنهان شده موجودیه در سرشت ساجد مسجودی آهن و سنگ از برونش مزلمه اندرون نور و شمع آلمه درج در خوف هزاران ایمنی در سواد چشم چندان روشنی اندرون گاوتن شاهزاده گنج در بیرانهی بنهادهیه تاخر پیر گری زدزان نفیس گاو بیند شاه نه یعنی بلیز حکایت آن پادشاه و وسیت کردن او سه پسر خیش را که در این سفر در ممالک من فلانجا چنین ترتیب نهید و فلانجا چنین نواب نصب کنید اما الله الله به فلان قلعه مروید و گرد آن مگردید بود شاهی، شاه را بود سه پسر، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر. هر یکی از دیگری استودتر، در سخاب و در وغاب و کر و فر. پیش شه، شهزادگان استاد جمع، قررت العینان شه همچون سشمع. از راه پنهان ز عینین پسر میکشید آب نخیل آن پدر. تازه فرزند آب این چشمه شتاب می رود سوی ریاض مام و باب. تازه می باشد ریاض والدین گشته جاری عینشان زین هر دو عین. چون شود چشمه ز بیماری علیل خشک گردد برگ و شاخ آن نخیل خشکی نخلش همه گوید پدید که ز فرزند آن شجر نمی نم کشید ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتان یا غافلین ای کشیده از آسمان و از زمین، مایه ها تا گشته جسم تو سمین. تنز اجزای جهان دزدیده ای، پاره پاره زین و آن ببریده از زمین و آفتاب و آسمان، پاره ها بردوختی بر جسم و جان، تا تو پنداری که بردی رایگان، باز نستانند از تو این و آن، کالای دزدیده نبود پایدار، لیک آرد دزد را تا پای دار آریستین، کم همه باید فشارد، کانچه بگرفتی همه باید، گزارد، جز نفخت و کانز با بامده است، روح را باش، آن دگرها بیهده است. بیهده نسبت به جان میگویمش نه با نسبت با صنیع محکمش. بیان استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی و مستغنی شدن او از استمداد کار ز درون جان تو می باید که از آریه ها تو را در نکشاید، یک چشمه آب از درون خانه به که آن ز بیرون آید حب کاریز اصل چیزها، فارغت آرد از این کاریزها. تو ز سد ینبو شربت میکشی کشی، هرچی زان سد کم شود کاهد خوشی، چون بجوشید از درون چشمه سنی، زستراق چشمه ها گردی غنی، قررت تلعینت چو زاب و گل بود راتبه این قرره درد دل بود قلعه را چون آب آید از برون در زمان امن باشد برفزون چون که دشمن گرد آن حلقه کند تا که اندر خونشان غرقه کند آب بیرون را ببرند آن سپاه تا نباشد قلعه را زانها پناه آن زمان یک چاه شور از درون بیز سد جیهون شیرین از برون قاطعال اسباب و لشکرهای مرگ همچوده آید قطع شاخ و برگ در جهان نبود مددشان از بهار جز مگر در جان بهار روی یار زان لقب شد خاک را دار غرور کوکشت پا را سپس یا ملعبور پیش از آن بر راست و بر چپ میدوید که بچینم درد تو چیز نچید. او بگفتی مر تو را وقت غمان دور از تو رنج و ده که در میان چون سپاه رنج آمد بست دم خود نمی گوید تو را من دیدم حق پای شیطان بدین سن زد مثل که تو را در راز معارد با که تو را یاری هم، من با تو هم، در خطرها پیش تو من می دوم. اسپرت باشم گه تیر خدنگ، مخلص تو باشم در وقت تنگ. جان فدای تو کنم در انتعاش، رستمی، شیری، هلا مردا باش سوی کفرش آورد زین اشوه ها آن جوال خود مکر و ده ها چون قدم بنهاد در خندق فتاد او بقاها قاه خنده لب گشاد هی بیا من ها دارم ز تو، گویدش رو رو که بیزارم ز تو. تو نترسیدی ز عدل کردگار، من همه ترسم دو دست از من بدار. گفت حق خود او جدا شد از بهی، تو بد این ها هم کی رهی؟ فائل و مفعول در روز شمار روسیا هند و حریف سنگ سار و رهزن یقین در حکم داد در چه با در بیس مهاد گول را با گول را کو را فریفت از خلاص و فوز می باید شکیفت همخر و خرگیر اینجا در گلند غافلند اینجا و آنجا آفلند جز کسان را که با گردند از آن در بهار فضل آیند از خزان توبه آرند و خدا توبه پذیر امر او گیرند او نیمال امیر. چون بر از پشیمانی هنین، عرش لرزد از انین المزنبین. آنچنان لرزد که مادر بر ولد، دستشان گیرد ببالا می کشد. که خداتان با خریده از غرور، نک ریاز فضل و نک رب غفور بعد از اینتان بر گرسق جاودان از هوای حق بود نز چونکه چون که دریا بر وسایت رشک کرد تشنه چون ماهی ترک مشک کرد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 در تواف شهرها و قلعهاش، از پی تدبیر دیوان و معاش، دست بوس شاه کردند و ودا، پس بدیشان گفت، آن شاه مطا، هر کجا تان دلکشد آزم شوید، فی امان الله دستفشان روید، غیر آن یک قلعه نامش حشربا تنگ آرد بر کلاه قبا الله الله زندج ذات و سور دور باشید و بترسید از خطر رو و پشت بارجهاش و سقف و پست جملت امثال و نگاه و صورت است همچون آن حجر زلیخا پرسوار تا کند یوسف به ناکامش نظر چونکه یوسف سوی او می نن خانه را پر نقش خود کرد از مکید تا به هر سو کنگرد آن خوش ازار روی او را بینت او بی اختیار. بهر دی در یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد. تا به حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند. بهر این فرمود با آن اسبه او، حیسو و لیتم فسوم وجههو. از قده گر در اتش آب خورید، در درون آب حق را ناظرید آنکه عاشق نیست او در آب در صورت خود بیند، ای صاحب بسر. صورت عاشق چفانی شد در او، پس در آب اکنون کرا بیند بگو حسن حق بینند اندر روی هور همچو مه در آب از سنع غیور غیرتش بر عاشقی و صادقی است غیرتش بر دیو و بر استور نیست دیو اگر آشق شود هم گوی برد جبراییلی گشت و آن دیوی بمرد. اسلم و شیطانو آنجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید. این سخن پایان ندارد. ای گروه هین نگه دارید زان قلعه و جوه. هین مبادا که هوستان ره زند. که فتید اندر شقاوت تا ابد از خطر پرهیز آمد مفترز بشنوید از من حدیث بیغرز در فرج جویی خرد سرتیز به از کمینگاه بلا پرهیز به گر نمی گفت این سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه هزار خود بدان قلعه نمی شد خیلشان، خود نمی آن آنسو میلشان. کان نبود معروف، بس محجور بود، از قلا و از مناهج دور بود. چون بکردان من دلشان زن مقال در هوس افتاد و در کوی خیال رغبت زین من در دلشان برست که بباید سر آن را باز جاست کیست که از ممنوع گردد ممتنع چونکه که الانسان مامونه، نی بر اهل تقا تبغیز شد، نی بر اهل هوا تحریز شد. پس از این یغوی به قومن کسیر، هم از این یهدی به قلبا خبیر. کهی رمد از نی همام آشنا، بلرمد رمد زن نی همامات هوا. پس بگفتندش که خدمت ها کنیم، بر سمعنا و عطعناها تنیم، رونگردانیم از فرمان تو، کافر باشد غفلت از احسان تو، لیک استثناب و تسبیح خدا، زیتماد خود بود از ایشان جدا،